بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وزاقواله وقعب إلى قهر إلى الناصمين ومن أعذر دائما تعالى الرجل في المسلمين وإن الله من فرح جنج الحمد لله رحبتك يا أحد در اینجا صحبت ما رسید که این صحبت در قرن شهارم یعنی و عواله درنه پنجون یعنی از آخر قرن سرون و فرانه شهارم و پنجون در میان اصحاب ما مقدر جدیدی که بیدا شد تمثل که بهش ما بود در محتب برداد که از فرین در محتب قوم هم این نبود، بود یعنی ما در محتب قوم همه سوکه به اجماع نمی نمیدیدی اما در محضر این راه بود اجماع هم. و عصبا ترکیل روی این اجماع در کلمات مثل مهمون سرده خیلی زیاده و شده توزی. از دو از از ما یه توجی ها که رو برای این اجماع بیان کردیم که نحوه ترقیز لیکن جهاد جلو که ارز کردم و تفسیر که ارز کردم دیروز م ارز کردم م تحکید بکنم انسافا نمیتونه بر درصد موارد دروای اجماع انتبار پیدا بکن یعنی یه ده در درسد پونزده درصد در میمونه که خیلی ما هنوز تفسیر روشنی برش نداریم نمیتونیم تفسیر روشنی مثلا سید مرتزا اعضا اجماع میکنه فقط خودش مالق یعنی لااقل ما قاهد دیگری نمیشناسیم این کلیاتی هست که در موردش صحبت داره شما رفتن رفتن شهره توسی برخلافه می کنه یا شهره مفید که اصلا دیگه نه شهره مفید و شهره توسی ایشان دلیلش این ایراد داره دلزا این توضیحاتی رو که ما عرض می‌کنیم این واسه در شری توضیح نیست این واسه اینکه انصافا باید, باید معترف بشه حالا ممکنه سید مرتضی با این اونا باید بودن امکان داره برای بعید بلید 3 موضوع نکته یا دروازه شما بود ممکنه رو طبائل بوده مثلا فکر بکنه که اینجا مثلا با مساجه اصلا برایت و برایت محتمال علیه پس جای شما برکر بکنه این ممکن ممکنه در حد امکان هست روشن نید در آیانه میشه تحقیقات فقرسی در این جرد انجام داد و که به به نظر من بعضی از مواردش خیلی به نتیجه بازه و روشنی نمیرسونه دست ما بسته از اطلاقی معلوماتی کلان داریم دست ما خیلی باز نیست اون به طور کلی، به طور کلی، این تلقیاتی که از سر به اجماع شده حالا کتاب که ما عرض کردیم از دوام فکر رضا شروع شده یعنی کتاب تکلیف یا تکلیف چرمه کتاب مشابه این که که الان به اسم در خیلال ما هست عرض که به طور کلی اگر بخواییم این اجماعات و تلقیق به تحریک بکنیم تحلیل رو بکنیم تحریک بکنیم. عرض بکنیم عرضش شدیم کلی خود دفعه بزن. اگر این خطاوا ترفی از معصوم باشه حجیت داره مثل امثال ابوذریا و مؤتلمی که اگر خود باشه ها به نظر و اگر این خطاوا به نفع تولی باشه از بابا مثلا دو تا سه روایت به بابا کردن به این رقی. این دیگه فایده حل حجیت نداره این حجیتش روشن نیست ولو پس اون علمان برداد باشن یا اقوم باشن در این جهت کار روشن نیست. تبنی و جیتی نداره. اما تلقیل شده. اون وقت ما مثل علم منطق که وسیعه برای جلوگیری از خطا فعلا وسیله در درست نداریم. که نشون بده کجا تلقیل کجا تبنیل شده. انصافا خیلی این قسمتش شک موشده. وسیلهی یعنی آن در درس در ما نیست ولی مثلا اگر اون مسئلهی که مطرح شده به فرق محصول باشه به طور کلی البته هست توضیح شد یعنی به صورت فرق منصوص باشه احتمال تبنی زیاده و اگر از فرق تفریعی باشه احتمال تلفی توی زیاده به طور طبیعی این هست راست اگر بنامی به طرح منسوس باشه در روایات از او اثری و باشه احتمال تلقی خیلی زیاده و اما اگر بنامی به طرح تفریعی باشه رویس مرموم شیخ توسی حساب قاعده فتفار بشدن یا حدی از خواهی بردار حساب قاعده بهش فتفار دادن دیگه در اونجا احتمال تلقی به طبیعی بیشتره یعنی فهره هفری زمینه تلقی توش بیشتره تا فقه منسوس در فهره منسوس زمینهای های بیشتره در فهره هفری این زمینه های تبنی بیشتره که آرار خود خوباها باشه فنظر علمه علیه مسلام نگرد اون از این یه نقطه بطور ها با یه تفسیر بیشتری مجنونه یه مواردی که ما هر آن در فیام خورزا داریم و درش جایه اجماع شده این رویت مجموعه مواردی که در فیام داریم یا کتاب های مشابه حقوقه و پردار دا جایه اجماع شد از سید یا شیخ توزی این نقطه را ارز خیلی با ارزش این اینشالله ناطق باشه به ازنی تبارکت اون اینکه این موارد مختلف هم یک نواف نیست همه رجوع ما به مختلف شهر و رسالت اول جاهاییست که ما اصولاً در روایات نداریم. این روایاتی که الان مسند به ما رسیده در کتاب کافی یا مثلا کتاب سرور به صورت روایت نداریم اما فتوا در جا خلوزا آمده بعد هم پس علمای برداد ادعای اشماع کردن موارد است که ما نصوص نظر. این همون مواردی که ادعای, ادعای کردن این جورجه ها تلقیه. این که ادعای نظرم ها بود شدید برای این احضایش خاصی قارب بودن این از اون موارد مورد دوم که این هم نسبتا زیاده ما در مسئله معارض داریم تقرد میکنیم لکن این معارض ما به اصطلاح وجود معارض در مسئله مثلا در فرق رضایی یکیش اختیار شده این فرسون مثلا دو تا یکی یکیش میگه امبام نسال حالا فرسون یکیش میگه طلاق زنی که از سنت طلاق نمیدن باطن یکیش میگه صحیح یا مثلا یکی رواید داره که احرام قبل از مقاط یه یک رواید که داره وارد داره طرف مقابل مضمونش شیه که دو سا روایده ظاهر تو سراته آن مضمون یک که من در احرام از کوفه قبل از این امام می کنم خالیت رو بلند سرکت خب در رضا رو در کتاب کافی این ها همه آمدن همون رو دوردن که احرام قبل از این قادم و اون روایت ترجیب دادن که احرام قبل از این قادم این روایت که در صورت نرز میشه قبل از این احرام برد اصولاً در کتب روایی و در کتب فتوایی نمازه تا شیخ توسی اولین کسی که اون رو آورده شیخ توسی قبل از ایشان کسی اون رو نمازه خب سؤال خب، اینجا روایت معارض داشته اون روایت مطلح بوده این روایت در خصوص نرز اشکال نداره شیخ توسی هم واضح نه خب همی مطلح داره مقایت کرده اما اگه همده مجرد برمویم شنانه واضحه نه در کتوب احسا حتی در روایات اصحاب یا در کلاب فقیل حتی موقنه شیخ مفید هم نیمازه فضلان از برگیه کسون خب پس مناوردین گاهی میشه در یک مسئله تعارض بوده اون وقت در اون مسئله که تعارض بوده یک تایفش پیخ خونه یا به زالش ما اون طرف مقابل نیمازه و این تاروز را هم ما اگر شیخ توسی مروض نمی ما. حالا فکر رضا حدود سال 300 نوشته شده تاروز ما چه چار اگر شیخ توسی نبود ما اصلا مسئله تاروز داره شیخ توسی رو باید شوه سؤال آیا این دعوای اجماع و تردیم مثلا در این جور مقاله آیا این نافع هست یا نه این انصافا مشکله یعنی خیلی یه جواب کلیب شدیم بله نیست بعضی از مواردش تلقی باشه انصافا این رو من اطمینان دارم که بعضی از مواردش تلقیه و بعضی از مواردش نه زادرن تبنی باشه بعضی از مواردش به نحن تلقی و حالا اون موارد رو من اجمالا عرض میکنم چون اینجا اینوها خیلی خیلتیفی داره که بگه وقل آجز و اسرار مگوز اجمالش هست میخواهد تفاسیلش و خطوصاتش باید وقتی که توزید بوده که در یک مسئله حالا چه از خود واقفیه به اون رو که چه از بقیه از خواهد. اما تدریجا از زمان حضرت رضا که واقفیه جدا شدن باید شده, شده, شده واقفیه یه روایت رو گردن به که اون مکتب واقفیه به اون روایت شناخته میشود مثلا واقفیه من مثال واقفیه را این بحث نشده در میان علمای ما خیلی لطایق و ضرائف فراوان داره که انشالله باید بیشتر تو موارد مصداقیش متعرض بشیم. واقفیه به خاطر اینکه بعد از موسیقه جعفر و احساسا که خیلی چون بیدن احانت میکردن از, از بعد در جوری الله علی و از رضا صاحب الله هم که مراجعه نمی من این خیلی از ها عقایدی و تندرگی های عقایدی و حرفهایی که زده شده اون چی که در میراس های ما اثر گذاشت اینجاش بود گاهی میشد که اینها چون معارض محاوله یعنی به امام بزاری ایسا و بعد حضرت جواز هاییم بعد ما را چه اینجا مثلا پس که پیش اینها ها حضرت از و عقاید در باب تاروز کنن رو قبول میکردن این روایت ممکن حتی از شیعن باش از محمده مسکم باشه ممکن از خودشون باشه از خود واقعیه. مثل علیه نوی همزه باشه اون روایت اشکال مختلف ده اون وقت ما می‌بینیم که مثلا در کتابیی که دست ما میاد فقر رزان احتمالاً به دلیل قبل از کافی باشه. در مثل فقر رزان کتاب کافی کتب صدوب حتی کتاب شهر مفی کتاب شهر مفی اون روایتی که واقفیه ازش اعراض کردن اون مشهور شده به برکه ازیوان این احتمال هست که از زمان هزار رضا و هزار جواد و حضر حادی و هزار عرض شده که روایات متعارضه امام 15 این طایف رو عمل بکنی واقفیه چون به این مراجعه نمی خودشون طبق قبائلی که داشتن ترجیح میدن که به اون رو باید عمل بکنن رو شد مثلا همین حدیثی که الان خیلی معروف است در احسان فاقام و بندها اضای اجماع شده اضای اجماع زمان سه دوم هست و از زمون ما از زمون این رو نه کردن که اگر از شون زنی که طلاقه شما ازدباه شون اشکال اشکار نارده از زمون هم منزالک ما هم زمون بیگن کنید هم منزالک هم این نباشه از هم شده قاعده الزام قاعده اقلزام دو پر احساسی دارد یکی زنست طلاقه که یک مورد از موارد اف که تیار شده چهرش اینجا نیست لکن بنای اصحاب این شده که برای قاعده الزام فروعی بگذارند و عده از فروع اضافه بکنند بعد مشکل شدن با یو مشکلات دیگري و هنارا کار بکن زیادی از فقهای ما معاصر برای معاصر قاعده الزام رو مستقلا نوشتند بعضام حتی رساله نوشتن قاعده الزام قاعده الزام بعدش هم یک کلمه است چیز غیر ندید فرض مو و منزله در باب در باب ارث می تاریخیارو اونجا داره اما تغییر ارث مهم نیست تاکید ارث مو ما ارث مو به انفسهم این تغییر داره اونجا نیست این تغییر در همین باب طلاق خب ما در باب مصطره طلاق هستند که حتی اهل سنت چه طلاقه بدهند یه روایت داریم که اینها رو ازدواج نکن، این طلاقشون باطل، اینا ذاتاً ازدواج هم باطل. اینا صلوغ واره. رو یک روایت داریم که صحیح هم هست که اگر مردی سنی دریسه دار شما خواستید اون زن رو بگیریم یک نفر عادل با خودتون بردید، تاذر نفر عادل با خودتون بردید پیش اون شخص بشین تو زره طلاق بدی، میگه بله. از این وقت حساب بگه یعنی با اینکه او برساد رو بله انشاء طلاح مهمه تعبادن این روزه این نقالشو به این رو این رو کلیمی اعود برخم کلیمی این روزه بود از به ما نه در دبار هست نه در کلیمی هست نه در فقیه هست نه در موقعه شرفی این شروعشو نه این اولین بار شرف توسی ورده تصادفاً چون یه مطالب همی تحقیق بشه ریشه هاش بشه روشن میشه. خود این رو وقت علی ابن نبی همزی بطایینی گفته میگه قال او آماورد ما قاله هو علی ابن نبی همزی قاربه حقوق علی ابن نبی همزی گفته حضران عزمو هم منظالب معزمو بیاید بسن علی ابن نبی همزی رأس واقفی هاست رمز واقفی هاست محروطه این چهرهی ای که در گروه نه دو به برزا تأثیر گذارم هست روی واقفی علیه مردی علی حمزه بخانه نیست خب چند که این وضعاتون روشن بشه خب این احتمال هست که اصولاً چون واقفی ها قاعده ارزام رو شعار خودشون قرار بزن خب نمیشه بگیم که مثلا از امام جواب یا امام حاضی یا امام عسکری راجع به زن سه سمت... طلاقه در من افتباهه سوال نطوری بریده یه چیز که سنیه زیاد انجام میدم بگیم سوالی نشده که خیلی بریده از اون که میبینیم مرومت کلینی صدوق شیخ صدوق اینا هیچ کدوم به قاعده الزام در اینجا پتوان نمیدن اصلا روایتشو نیوردن اصلا روایت قاعده الزام نیوردن شیخ سوسی شیخ سوسی او برده تخصیص؟ که در بعض از موارد حالا تنهید اون موارد که باید الزام باشه نه التزام باشه نمیخوام باید بحثش باشن دقت کردیم در اینجا این شبه خیلی دقیقیه که اصولا اصحاب ما چون میدونه مثلا واضحیه موضوعشون اینه موضوعشون اینه میدونه مثلا واضحیه موضوعشون اینه که باید الزام شاری میشه از اون دارم علمه فرمودن اتب و از مسطلقات سواسن تیمه جلس بارد از یا اون حدیثی که مردم کلی کلیه نمکنه ماند ندیرش هم می فهم خب کسی بگه که ما انصافا البته بعد از مردم شهر مثلا به دیویسال اضعای اجماع شکنه بایده یکی از ارگله بایده اجماع هسته اجماع با این تهدیدی دیگه به شما عرز این اجماعی که وجود نداره این اجماع از زمان شیخ توسی شروع شد اس ما قبل شیخ توسی روات ازام ندیدیم اگر شیخم نبود هیچ دیگه دیه نداریم قبل شیخ توسی روایت اض مهن رو, رو ندارم اصلا کلا ندار دقت فرمودد خو وضع اکار رو شما عرضه بکنم که چند بارم خلال بحسا اشاره که که ای اوقات در سغراشم باس بحث کرد اصلا چی مسئله اجماعی نیست ادعای اجماعی که شده این است که ما در برد ما ها تا قرن پنجب تا برداد آخر مکتب برداده دوم مکتب دوم برداد اونجا در آنه متعرضی بعد از مکتب دوم برداده هنوز متعرض نشده شده دوشنگ من خود من شخصا مورد این مسئله دیگه استدهاریه با عنوان تشرف خدمت مجیعت الله اعتمال قدیم میدن خب درقت کنیم اونجه که یک طایفه از روایات به عنوان مذهب رسمی واقفیه یا فتریه شناخته میشده بسرگو کنیم روایت معارض بوده فصل فتریه ها این رو با مثلا مذهب فتهیه این شد مثلا امرام قبل از میگاهد چون من در توضیح ها اینجا نیست اصلا احرام قبل از میخواد تا قبل از ما مصادر در انجام میزن در کوفه احتمال ما قوی دادیم که این که در باید نهز آمده این مبنای واقفی ها بوده احتمالش شما قبلی واقفی ها این مسئله را قبول کرده که نهز قبل از احرام میخواد با جرور رفاست و در مقابل روایت صحیح داریم لا تحرم الا من در مواقعی تذکی وقتی آرسول لا یعنی بخیره که انتحرم الا لا احرام الا من در مواقعی تذکی وقتی آرسول این احتمال با ما قبیهن واقعا احتمال بسیار قبیهن بیدیم که اینو تلقی باشه که این معنی که عمده ایمون سلام عمده ما گفتن به هر تو واقعیه مراجعه نکنیم که میگن در حال میشه. برای که مطلقا نویشه خب این روایت نظر را احرام هم هیچ کس نه خکمش نه روایت ایش رو آورده بلا شیط توسی حضرت شیط توسی مصدرش نویشته کتاب حسین سعید ایداب سخار ای کتاب, کتاب. لیکن کسی از این مسادر نه روید کرده یعنی کتاب حسین سعید بوده لیکن محلومت کلینی ازش نه روید نکرده محلوم شیط مفید بهش فرطان ازده اینام که در کتاب بوده مخواستم بگم این روایت بوده روایت اسماله ماله من خود من میدم به اینه که اگر مسئله باشه کسی رو دردانان باشه محل اطلاع باشه به قصد دو طایفه روایت داره یک طایفهش رمزی ایک از این رو خود درداره رمز یعنی واقفی ها بیشه این قصد وقت در مقابل روازی دیگه در کافی آماده که روزا آماده شیخ صدوق صدوق پدر فقه ها آوردن که ما اصلا این معارض رو هم بعدها تبسته شیخ صدوق روزی این جاها رو من احتمال قوی میدم تلقی باشه خود من دیگه شما ها اختیار به با خود شما خود من شخصا با مطالعاتی که بودی تاریخ و روبش مزارب داریم احتمال قوی میدم که در این جور ها تلقی باشه تبنی نباشه یعنی در مسائلی که کسی را دورانه دقت قرار مثل احرام قبل از نزن تلاقه با اون به اصلاح که شیعه و سنی و با این حساب که این طلاق درست نیست انها ها نزارت احتمال میدم که ائمه این رو در مقابل کلام واقفی ها که میگفتن اشکال نداره نشون بگیرید اشکال از گرفتن این نیست اینی که در کتاب کلیمی آمده یا فیقا رضا بعد کلیمی صدوق پدر صدوق پسر شیخ مفید در این کتاب آمده خوب دقت دار این در حقیقت مطلبی بوده که اعمه پرموده همه نه روشن شد در هر جا در هر تاروزی ما این نمیگی در هر تعارضی در اون تعارضی, در اون تعارضی که یک تارف یعنی واجهه و مشخصه مکتب واقعیه میشه داشتن که نه خدای خاص دا بودن در همین روایتی که مردم شیعه توصیذ اول یک لایس اولث من ما روا من ما بن علی حمزه انه راو سر چیگه از شما سالتان راجعی ببانده بریم خیلی وست خوب خیلی وست بازه و فکیلی چون با هم که صاحب که ما چی گناهی کریم رو زن اون در در ما زن شوهر داریم بریا بعد امام میپهرد و از شاهد، دیگه دو شاهده آقل برای اونجا پشت بگو شوهرش این خواهد طلاقی گفت برد و از هم یرای اگر ایتا مثل طلاق آقایی میشدیم خب اینجاش عرض کن و این حوال به فرمون این پیسی مثل اینه که خلاف میشه با نحن که طلاق آقایی میشه با نحن که طلاق که یه بگیه تحبودن با تحبودن اگه بنابرای قبول بکنه تحبودن قبول بکنه شیخ خصوصی او و علیه نبی به قاعده البته خود بنده معتقدم که برپر از علی ابن علی همزده قبل کنی خلافنده چکل خلافنده این محشون یه بران این خلاف بزار و که شاید درست نبلشه قاعده در مارد جهر صادق قبول کرده مثال زنی بوده شو سنی شوار سنی هم داشته تلاقش ما لازم یه طلاقه داده است طلاقه داده یک مجلس همین دیدن رو متعلقه ایسران شوهر شده جدا همین کافی شاید مرد از قائل ایلزام حقیقتش این بوده که مقام اثبات نسو بود مثل ها این فتوه علمانی هیم این اشتباه نسو لیکن من معتقدم شاید قائل الزام رو علیه در حمزه بد فهمیده مراد از قاعده الزام تو مقام اثبات بود اما یه شويه این یعنی دلیل نیست طراقه در مجلس وارد این شوهرسازه این باتری شه که تو سینه اینجا عوضه این اختلاف سر این قسمتی که آیا این روایت حمله بر مقام ثبوت بکنیم یا اثبات جای دیگه هم قائل شدین خلاف اندیشو که اینجا را حث بر مقام اثبات بکنیم. و خیلی از معضلات روایتش رو میشه حل حل بکاله اون بحث دیگری که اون حذر است یا نیست یا مخالف با کلمات از اصحاب اون بحث دیگه‌ست شیف مفید چند از فاسه بگیرد شاگیرد شیف بلی باشید ما به این ما الان نسبت ما فرصه تلقیات شیف مفید شارت در سیزه را خاکش تو حالا فرصه این با دیویست پنجاه که امام صادق بودن و روایت بوده یا دیویست و پنجاه که ما شر دویست و شست تا چهارسدو دوازده مثلا چل سال مثلا فاصل سد و پنج آن شما که الان در این تاریخ هستین هزار چار چارسدو با شیخ انصاری که هزار سیسد و هشتاد و یک رفات اشان هزار شیخ انصار شما الان یک خصوصیاتی از زندگی شیخ انصاری دارین که کسی کس دیه ندرهو تاریخ ا این ها هم مثلا هزار ساق عبوده فرمه چون خصوصیتی داریم بله ممکن خصوصیتی باشه ارتکازات و حوزه باشه در حوزه ما کتاب روشه خانسایی درسی از کتاب روشه اون فصول درسی میزیار این, این مقدارش که مثلا در ارتکازات فرسی بد نیست اما این چیزی اضافه نمی کنه پس برای این مورد دوم که مورد تا بود که انصافا از کرده نظر شخصی خودم قید و قیودش هم فرامیش نقرمونه اون جایی که تعارض باشه دو طایفه روایت باشه یک طایفش واجهه و مشخصه مذهب مخالف باشه انتقال بکنه مشخصه مذهب واقفی ها باشه که نیستن رهی واقفی ها اینه پرمول شد در مقابل ببینید طایفه دیگری هست خواحه‌های بزرگ ما، علمای ما، مهندسین ما فقط این تایپرا عبور کرده. بعید نیست در این با این رید بعید نیست تلقی باشه. اینم نظر خود بنده. ارس شد. خیلی. مورد سرومی که ما به اصطلاح الان داریم که برای این تلقیات خوبه، خب این نسبتا معتنابه این مورد. غالبا ما مشکلات متنی داریم در باره نه مشکلات به اصطلاح دلالتی مثل یه روایت هست روی سریع از دولار مثل امنالعب یقون فریق و حالا بنابرای این دوز نسخه باشیم گفتن از نسخه مختلف نیست امنالعب یقون فریوسل نوافه به شه یغزی یوسلی اگر یوسلی باشه یعنی استحباب کسیت نوافه اگر یغزی باشه یعنی استحباب بخش در آخرشم داره خدا می توانم داره اونزور در عبدی یه حضی مالم افتر زواله آخرش اینه اون سرک آخره اران مثلا تا این حدیث با دو متن اورده در وسائل او یک باب اورده باب استهباب کسیس نوافر با اون نر عبدیقون یک باب دیگرم عوضه استخباب قضا نوافه معمت روزه نلعب یقون تا یقون نوافه بگرد نیکنیم کلمه یغزی و یوصدی این یغزی و یوصدی شاید مثلا مثال بارستری بگید وقت بگید گاه وقت میاد تو این جور در چه رضای رضا یوصدیه یه یعنی. من این رو یا یعنی. تو فتاوای اصها اینه ادعای اجمال رو میشه دعید نیست که ما در اینجور جاها برای شناخت متن حدیث به این تلقیات اعتماد بکنیم این غیر از این نظر مرسوم هستن استکشاق و قول امان نیست الان یه حدیثی هسته خب نتیجه چیه مشکلن درست کرده حدیث ما مارسه نه امال کتابی در هج داشتن دیدیالی از احکام هج در کتابی ایشان بوده اونقدر این, این کتاب شکرد داشته و اونقدر این, این کتاب مفید بوده که اگر همین الان که بنده در خدمتون که این کاری یک آیه انجام داده برایم به نحوه علمی انجام نده روایات یک من خبردم شد که سریانه جان روایات معاویات نعمار را همین الان با یک نحوه علمی اگر جمع بکنیم همین الان میشه بانان مناسق به دست حاجی جان یعنی این که در نزد روایاتش بپنه یه تیکه داره تو این کتاب حجش اون تیکهش اینه که ببینیم ما یه حدث حکم می‌داشیم. یک حکم می داشتیم که اهل سنت هم داره اونا خیلی شدت روش حساب که زن جلو اون مرد مسلی راه نره از بسید داره بعضی هم مسلمان راه نره من این وقتی داره مدینه بودم شاید دو سه با طرف فاصله داشت نامه ماشین گیر بود داشتن بود 남자 نگار پیشه چیید در حالش نام چند قدم اومد جلو منه با دست شناز بود که پاس نگش باز شد در در در در این مخصوصا اتیزیارش رو زن حساسه یکی از موارد که کپی هم آیشه دو فریاد میکرد چون اهل داشتن دارن که زن سرگل سرگو قلا که اون سرگی با حیوانا ردیف کرد. این بست قدیمیه این طور رواج پیغمبرم هست زن مقابل مرد رد نشه این ها می آمدن می گفتن اما اگر متعارف مرد بود نوست ایام شلوقی هشت تو مسجد الحرام نه مسئل ندید چون شلوغه اگر زن از مقابل مرد رد تو اشار روشن شد این خیلی واضحه که در ایام هشت در مسجد حرام مثلا تو مکه, تو مکه،, تو مکه مثلا نه. اصلا فقهای ما باعثشون تعاملات کافی نکردن فلسفه هاشون ایشو تجربه شده که که حجرا میگیرن <تصفيق> مثلا اینو میذارن یک مطلب یه مسئله غیر داریم زن بر مرد جلو نایسته اون راه داشتن جلو مصلی بود اون مراقبت بود بله یکی اینکه زن جلو مرد نایسته و هم گفتن در مسجد هرام در آیام شروعی که زن جلو بود شکل نداره. البته بعضیم ایشان در مکه، بعضیم ایشان توی مسجد هم اون که روایت داره آیام هر جای شروعی در شروعی مطلق نیست. اما فرق باشه که مطلق نیست یا فرق نداره. پس بعضی اونجا شکل نداره چون مکه در بیت بتول... الله زنها ممکن است جلو آرای کویستن، جلوش ما می‌یستدند نمازش کردند. چه سنت نماز کرده‌ای؟ و تو نماز تواب محسوس روشن شد پس بنابراین ما دو شو داشتیم یکی اینکه زن از مقابل مسلی عبور نکنه استثنان خود مسئله حرام تو هست یکی هم زن جلوتر از مردی ایست این هم تخصیص به زن در ایام حج دقت میکنی از اجایب کار اینه که ما یک روایت وارد داریم از معابلت نعمال تو این روایت بازده دو تا مرد در یک مرد رلاس همون رو مرعص و دایی یه دیگه رجل در هر و این نماییو خدا حضا این نما مکه مکه لندن ناس یا بک و بعضان مثل یکی مکه لندن یکیه راویان یکیه. راویان یکیه میگه زن از جرا مرد عبور نکنه املا تو هر چون بکه با از مردان هم د اشقال نادر ونی نماییو نمای ابو که ایشاهر گوزان این که زن اجر و مرض نشد در شهر تو مکه اشقال نادر دادم به مکه کلن تو توی در مکه گفتن اشکال نداره که ظاهر میگوه تو تو مسجد جنب اشقال نداره اما روایت توی بحثه هراه نادر توی مکه همین مد همین عبد معاویه بن عمار انس مکه فیدیوزو انیوسل رجل و امامهو امراتون مضمون کلام این درسته به این نمایو که بیساره بودام این که زن در مردم از مقدم دخونه این در بقیه شهرها مخوره در مکه اشکال روشت در دو تا مدر آمده خیلی هم فهمده مثلا آقوی این مدر دومی رو قبول کرده کوئی مقایسه این مرد دومی که زن مقدم بکنه فتوه هم دادن اشکال داره زن مقدم بر مردم ها این نمازی افراد داره که پیساری رو بنداره دیگه قبول همه این فتوهیشون مشکل تلاب مشکل همین دیگه که زن اشکال نداره بر مرد مقدم نواز بکنه این سعیه معاویات نعماره همین سعیه معاویات نعمار در مسئله مرور و مرعت دینید مسلیه که این مرور المرعتر میده مسلی فیسار گلدان مکروه در مکه اشکال ای دقیقا این دقیقا مکروه وای یکی صدر وای یکی ذکره واید اینما یک را داره که فیسار یکی اون وسطیش فرق کرده حالا در کسا فقر رضا فخورزا سجوره فقر رضا مرور گرفته گرسه خیلی عجیبه سؤالشو، یه سری تا سوال میتاره ما که من خب اگر هر رو میورد، من هم چون صدوق یکی، صدوق در کتاب خسار یکی آورده. خسالی علل، یکی در کی در در اینا خودمیگه تقدم زن زنبرنه. اینا همه ذرافت داره. اگر دو ساواشه با هرگار رو میورده. مشکل هست مصرفه. ما هم که میپنیم مصرفه. در سفارزا مرور مرعت رو آورده. همین نوعه تو آورده. لیکن اون محسی که میگه زن از جلو مرد آورده کنه. تو خود من هم عملتی مستده. هرم از این محس بخونم. خیلی ای معاید این جلو نباشه. شنون جایز نمیدون چقدر درصد با قرارت هم به هر حال الان خب عملاتی می کنم بیشن پتون برمیه بیدید. یه مسئله که الان هست چما تحجیب نمی بکنی دلیلش یه روایت با دو مثل اون ارزشی که این اجماعات مخواد دلست بکنی یا فحورزایی که از نقاطش اینجاست آیا ما می توانیم بگییم به اصطناب فحورزا که بردر مشروع شد همین متن مرور المرعه رو بگیریم نه متن تقدم المرأة، اولی متن تقدم المرأة رو گرفتن. فقطو میدونیشون. خیلی هم تقدم دیدین دید در ایام حج این اصلاحات، چون از هست، یکی از در حج هم همینه زن یا یا تغییر در یا خود زن نماز می‌خواد به این این الان مشکل داره، الان کار این تو حدیث واحد هم هست. حدیثی هم نداریم. و در این در برای تقدام هم همین حدیث این نمایی و فراؤس فیرداله که سارو گلدان در زیر هر دو آمده حالا این مرکو استای اقتمارا ورنه یا قومت با سنت جاره. نه کراه که جز جزو سنت گرشه که همیشی مایه گرسی من دیگه طولانی صحبت نکنم یکی از مواردی که دقیق پرموزه که الان ما مشکل داریم، گاهی میشه متن دلارت ما اینجوریه، مثلاً رضا میاد، اون متن اختیار میکنه. که اگر فبهرزاب من, من چه خلاقی قبول در بغداد بوده، آیا این دلالت میکنه که اون متن ترجمه زن اشکال داشته باشه؟ اون نسخه واضح نبوده؟ چون اگر طبق آجه این باشه کم هر دور باید بیاری یکی رو بودیم صدق و علاوی شرایه فکرم هم یکی رو بوده اون تقدم مره رو بوده لذا به ذهن ما میدرسه که اصولا مهد روایت در کتاب و حج معایت روشن نبوده آیا میشه به این تمسک کرد؟ اجمالا بر نید اما وصولش به درجه حوکیت کاری ازش کاریست اجمالا این که او به اون بغنه داشتن و از نیده بودن و ما دو تا و الان مثلا چه این این زیاد اما این تحلیلی که ما کردیم نه شیعی این جنب اصولی که الان در بعد توسی داره. اساس من داره این در کتاب داستان رواه شهر طوسی در اوشوک افغان هست اساساً درسته ما خود بحث شد که گنج داشتیم این که میگن این چند محبوله مثلا واسه اینا رو کمی شده در مورد سوم حرف نیز میذاره یکی از موارد ما در کتابی که خورده این مشکلش اینه که به یک سند سگیه اون رو می‌ذارم در مورد سند نه این اون سند ضعیفه شون سرد اینی که هم اون که هست که سرد در حلب کافی هم آورده از نهایی آقایی داشته باشن توی کامپیوتر ببینم الان تو زهنم نیست کافی کدوم مطمئن آورده این لحظه تو زهنم نیست کافی کدوم مطمئن آورده این نمایه فرازاله که بیس سال بلدان سایم بلدان بزنی رو ما این چند مالی در دو اترسا